رخداد نادرستی نظری های هویت تاریخی ایرانیان از دیدگاه انسان شناسی به نام خدا برز سلام و بهترام خدمت شنوندگانی گرامی و همراهان برنامه برابری قسمت 29 برنامه در خدمت شما هستیم و صدای امید از سایت اینترنتی www.sodaiaomid.com پول ارتباطی شما شنوندگان گرامی با این برنامه و همه این برنامه های صدای امید info at sodaiaomid.com هستش منتظر دریافت نظرات، انتقادات، پیشنهادات و تذکرات شما و نکات تکمیلی شما شنوندگان عزیز هستیم حجومهشگران گرامی اندیشمندان و بزرگوارانی که در مورد مباحث مطروحه در این برنامه و برنامه های دیگه نکاتی دارن، انتقادی دارن و میخوان مطرح بشه میتوانند با همین ایمیل ارتباط برقرار کنند، ازشون دعوت بشه، در خدمتشون هستیم و از ازشون فیض میبریم، استفاده میکنیم از دانششون و از انتقاداتشون و حتی آماده برگزاری مناظره هم هستیم بین متعارضین و کسایی که نظریهای متعارض هم دیگه دارن و خلاصه یک ما مسئله رو بخوام باب کنیم که گفتگو در مورد مسئله علمی است و از بین بردن فضای مونولوگ و به وجود فضای دیالوگ کانورزیشن و گفتگو که در مورد هر ای که متعارض هستش در جامعه گفتگو صورت میگیره و این آین گفتگو هستش که ما رو به سمت شکلگیری تمدن جدید راهنمون می سازه. یک تمدن زمانی که از گفتگو قافل بشه و فقط درون خودش رو ببینه و به جهان نگاه نکنه و مشکلات جهان رو نبینه و برای اون راه حل ارائه نکنه نمیتونه جهانی بشه و برای جهانی شدن یک تمدن باید تلاش کرد، گفتگو کرد، جذب کرد اندیشه های مختلف رو و همچنین باشون روبرو شد، از مطرح شدن نظریه هایی که با قرائت رسمی در تضاد هستند نباید ترسید بلکه باید واقعا استقبال کرد از این نظریات و اونها رو به کار بست تا اینکه بشه به این مسئله رسیدگی کرد. در قسمت های گذشته خب در آخر قسمت گذشته نوغای ایران مهرگان هم هم در مورد مسئله که من مطرح کردم بابت به وجود آمدن زبان به وجود آمدن گفتگو و همچنین در واقع گویش در میان انسان اولیه که اتفاق همین گفتگو بود و این گنج گفتگو بود که انسان‌های که ما انسان هوموساپین و انسان مدل رو به تمدن سازی به ساختن و فرهنگ سازی رهنمون کرد یه مسئله رو در مورد همین خط عربی مطرح کردن که میتونه بحث پژوهش‌های آینده پژوهشگران باشه و خیلی لازم نیست که حتما اون چیزی که درست داده میشه و اون ای که فقط یک سری اساتی تو سی چهل سال اخیر نوشته فقط اون تدریس میشه به اون بسنده نکنن دوستان دانشجو و سراغ تحلیل ها و تحقیقات علمی دیگه برن من بحث رو مجددا ادامه میدم تا اینکه باز هم این مقدمهی ای که برای ورود به شرق آفریقا و مهاجرت های اولیه لازم هست میخوام مطرح بکنم در علم انسان شناسی انسان های کرومانیوم و انسان کنونی رو که در واقع هوموساپیان می این دو تا رو در واقع کرومانیون هم تا حدودی هوشمند می دونند برخی در واقع پجوهشگران ولی این دو نوع داره تفاوت های اساسی با یکدیگه هستند. هستن انسان های کرومانیون دارای های خاص خودشون بودن که از بسیاری جهات با انسان کنونی مطابقت نداره بهتر این نوع, از این نوع رو از, از انسان رو, رو مورد شناسایی قرار بدیم از حدوده در نزدیک 25 هزار تا 20000 هزار سال پیش یعنی پس از سپریشدان دوری یخمندان چهارا که به دوری پالولیتیک لیتیک معروف هستش این دوری آخر دوری چهارا به آثاری در این دوری نیولیتیک نشانگری یه تمدن خاصی بوده که تمدن ماله حالا تمدن نبا اون شکلی که ما بعدها بهش خواهیم رسید به عنوان ساختن یک شهر دور هم نشستن و دور هم بودن و به وجود آمدن یک اجتماع من این به معنی تمدن با ما حتی کلمه تمدن رو درمون به کار میبریم که این سلسله جنگری ای کسری فکت های خاصی از این انسان ها هستش اینکه, اینکه معمولاً بلند قامت بودند با حجم جمجمه بیش از حجم جمجمه انسان کنونی بودند دارای نژادهای مختلف و انواع متعدد بودند و معلوم نیست که منشأ واحدی داشته باشند چون ما انسان کورومالیون رو الان در اختیار داریم خود ما انسان ها از طریق مجردش های رسیدیم که حالا یک مادر مشترک بینه تا و 180 سال پیش داشتیم یک پدر مشترک تا سال 140 سال پیش داشتیم ولی در مورد این منشه مشترک کورومالیون منشه خاصش نظریه خاصی وجود نداره بلکه احتمال مکتوب بودن اونها از یک سری انسان دیگر هستش این احتمال بیشتره نجاد نژادهای مختلف اونها یعنی ها در اغلب نقاط زمین به طور همزمان و گسترده پراکنده شدن و نژادی از اونها از آسیا به اروپا هجرت کرده دهها بلکه صدها سال با انسان ناندرتال در جنگ و ستیز بودن این هم یه نکته که در مورد کرومالیون ها ذکر میشه افسونگری و جادو جزء اعمال و از علایه اونهاست که در آثار پژوهشگران جدید هم هستش میدونی که انسان مدرن امروزی در حال حاضر خب تنها من به معرفت رو گفت عقل میدونه راشنالیزم میدونه عقل بشر رو میدونه ولی یک سری در واقع اندیشمندان پست مودرن هستن که میگن نه لزوما فقط ما عقل رو نمیتونیم راشنالیزم رو رش... رو نمیتونیم به عنوان تنها منبع معرفت و اپیستمه برای بشر بدونی بلکه مثلا فرید مثل لیوتار میگه که حتی میگه سحر و جادو هم میتونه منبع معرفت باشه چون چون که یک زمان در دوری بشر سحر و جادو منبع معرفت بود لازم اونها به تکثر منابع معرفت معتقدند در کارهای اولیه‌شون تو کارهای اولیه ها عدم زیبایی به چشم میخوره ولی کم کم تبدیل به هنر نمایی هنرنمایی میکنند به نحوی که در اواخر عصر حجر یعنی دوره قدیم اصر حجر هنر اونها هنر هنر ها به اوج خودش میرسه در تصاویری که از ها میبونه صورت از انسانی یه صورتی از انسان رو از خودشون به جا گذاشتن و تصاویر اغلب مبهم و عجیبه صورتها معمولا دارای نقاب و بیشتر شبیه صورت حیوان هستش بد دارای اعتقادات و اعتقاد به آخرت و دنیای پس از مرگ بودن کرومانیون و برای جلب رضایت خداوند قربانی می و به جادو متوسل می شدند. بعد اون چیزی که در واقع در شناخت این کرومانیون ها ب... حتی تو بحث های جدید انسان شناسی هم به اونا در واقع رفرنس داده میشه اونا مطلقاً که اتفاقاً یک تمدن و یک فرهنگ خاصی رو اینها با خودشون حمل میکردن ولی اینکه ها... چرا باقی نموندن مثل ما انسان های هنوز نظریه مشخصی مطرح نشده خود فرهنگ مستقل و جراگانه‌ای که داشتن و دوره‌ای از تمدنی که در واقع پشت سر گذاشتند محدودش هنوز مشخص نیست یعنی تو چه محدودی زمانی شروع شده این تمدنشون و چه محدودی زمانی تمام شده و دلیل تمام شدنشون چیه و بسیاری حتی تمدنی که مال آتلانتیس هستش که برخی تو های اروپایی مطرح هستش که متعلق به انسان‌های کرومانیون بوده که البته این نظریه اینقدر ضعیفی ازش ولی نظریه قوی تر از این مطرح شده شواهدی هم بر اون وجود نداره بجز شواهدی که از استورها و نمادها و نشانهایی که تو های اروپایی هستش غیر از اون دیگه بحثی نیست. دلیل قاتل و قانع کننده‌ای بر انقراض اونها و از بین رفتن نسلشون هم در دست نیست. بعد از نظر فرهنگی و جسمانی شباهت زیادی به اسکیمی‌های کنونی دار. اسکیمی‌هایی که موعول در سیبری روسیه هم زندگی می می‌کنن و حتی در آلاسکای آمریکا هم هستن و در مناطق سردسیر تا در گرینلند هم برخیاشون دیده شدن. های خیلی زیادی به اینها دارن این کرومانیون‌ها مدارک و شواهد انسان شناسی و باستان شناسی درباره کرومانیون ها در همین حده و بشر تا به حال بیشتر از این در واقع نتونسته از اونها استفاده کنه ولی من یک سری مسائل رو از اونها تا حدودی درآوردم و از طریق یک مقاله که بازم در ساینس هستش یک قسمتشو من ترجمه کردم که یکی فرهنگ انسان های کرومانیون هست فرهنگ یکی فرهنگ اورنیاکی هست یا اوریلیا سید کینیا، یا سین. تقریبا یکی زورد یکی زورد هفتاد و هشت هزار سال سال پیش هستش که نخواستیم مرحلی در واقع ورود به یکی از اصلهای یخمندان هستش و همچنین نخواستیم مرحلی پیدایش یک نوع جدید و یک نوع هوشمند نه به اندازی انسان حوشمند و از انسان کرومانیوم است. هنگامی که انسان کرومانیوم به مراحل تکامل در واقع فرهنگ مگ در واقع روی کار میاد این فرهنگ دوم بعد از فرهنگ اوریناسین انسان کرومانیونی فرهنگ مگدالنی هست که در تمام نواحی اروپا در حوالی حدود سی هزار سال تا سی و سال پیش که وش امتیازش آلات و افزارهای دقیق و متنوعی که با آج و استخان و شاخ ساخته شدند و مخصوصا سنجاقها و سوزنهای ساخته شده در به حد کمال در واقع رسیده. حتی سنجاق و سوزنها نزومه آهلی نیستش دیگه بیشتر حالت یا چوبی بوده یا از سنگ در واقع می ساختن اینها رو. لذا بینیم که دوره نسبتاً بهتری هستش که از دوره قبلیش از دوره اورنیاسی،, اورنیاسی که ابزارهای بهتری برای زندگی می انسان‌های کرومانیون و همچنین در این مرحله از فرهنگ هنر نقاشی نیز پیش و نقاشی های آلتامیرا که شاهکار هنری انسان کرومانیون هستش به وجود که قاری سویل اسپانیا هستش که بسیار نقاشی عجیبیست و حیرت خیلی ها رو برانگیخته. بعد از این دوره تاریخ جراحانی یک قسمتی از انسانهای کرومانیون یعنی دولاندلند که با اون اصطلاح مطرح هستش که در دوران پالیئولیتیک پارینه سنگی زمانی که یخچالها عقب میشینن هوا همچنان سرد ولی خشکه نژاد ناندرتال مثل نژاد هایدلبرگ از میان رفته تو این حدود... تو این حدوداً نزدیک 30000 سال بیست ما در انسان کرومانیون رو میگیم ها یعنی واسه برمیگردیم به انسان اووساپیانی که تو آفریقا هست اینو میگیم که بحث چیزام تمام بشه چون این نوع انسان ما کم نداریم تقریباً حالا برخی ها میگن اسکیموها البته نظر غالب اینه که همون اسکیموها هم در واقع از نسل ما هستن یعنی هم همصنف ما هستن هم نوع ما هستن یعنی از انسان اووساپیان از انسان کرومانیون نیستن. ولی خب یه نظریه هستش بخاطر به خاطر همین نوبت طرح کردم که ما این هم بدونیم قسمت 29م برنامه در حال اتمام هستش. شما شنوندگان گرامی رو تا آغاز قسمت 30 به خداوند متعال میسپارم. خدای یار دارد